برسیدن اون گناهی که طبعاتش فرزند و ایال رو می گیره. چطوری برای فرزند و عیالی که نقشی توی این گناه نداشتن عرض خدمت شما اتفاق می افته. این متناسب با ادارت هست؟ برای مردهاد مال حرام مال حرام وقتی میره انسان تو خونه مثل سوختی می که انسان تو ماشین بریزه و نخالصی داشته باشه ماشین حرکت نمیکنه. همیون اون افرادی که تو ماشین هستن بین راه تو سرما تو گرما میمونن نمیشه بگیم که خب این بنزین ناخالش ریخته راننده ما چگونه این داشتیم ما رو باید میرسون خدا اون رو بامیداشه سنت عالم اینجوریه طبیعت این دنیا اینطوره که دیگران هم پاسوز میشن با عدالت و از منافتی نه, نه. عدالت همینه. عدالت به قانون و قاعده علت معلول پایبندی شده.